فصل سوم رویکردهای نظریه اولیه نقطه عزیمت تئوریک تلفیقی نظریه‌های پایه گوناگونی برای آغاز حرکت به سمت توضیح و بررسی خلقیات اجتماعی وجود دارد. یکی از آنها روی کار کرد کارکرگرایی است که الگوهای آموخته رفتاری را به مسابه ساز و سازوکاری برای تأمین نیازهای زیستی روانی و اجتماعی بررسی می‌کند مثلا بر مبنای نظر کسانی مانند مالینوفسکی میتوان فهمید رواج نوع قالبی از رفتار جمعی در یک سرزمین مانند روحیات تملق سازوکاری تجربه شده برای زندگی در آن سرزمین تحت شرایط استبدادی است یعنی اگر فرد دروغ میگوید اقتضای زندگی در آن سرزمین دروغ گفتن بوده و این یک مکانیزم زیستی است و کارکرد روانی یا اجتماعی دارد و در نتیجه نهادینه می شود و رواج پیدا می کند مثال دیگر این است که در یک جامعه خاص احساسات معمولاً غالب می شود زاویه این رویکرد نظریه نظری پایه شاید بتوان گفت قلبه احساساتی بودن اقتضای زیستن در تاریخ و جغرافی های پرمصیبت است در شرایط پرمصیبت، احساسات به واقع شیوه آموختهی از قابل تحمل شدن زندگی است. در چنین شرایطی، تسلیم و آرامش یا درونگرایی و نوعی تصوف منفی جواب می رویکرد روی کرد دیگر، ساختارگرایی است و به ساختارهای امیقی توجه می کند که فرهنگ را تشکیل می دهد. از دورکیم تا کسانی مثل رادکیلیف براون و اشتراس با اندکی تسامح به لحاظ تفاوت‌هایشان در یک چیز مشترکند و آن اینکه در پس نمودهای ظاهری زندگی مردم و روحیات و خلقیات آنان ساختارهای عمیقی نهفته است. ارزش‌های فرهنگی، معانی فرهنگی و رفتارهای آموخته فرهنگی ما ریشه‌های ژرف ساختاری دارند. حتی اگر هم تحول پیدا کنند. قبل از هر چیز در ساختارهای امیق صورت میپذیرد. رفتارهای آموخته ما نیز از طریق همین ساختارهای عمیق، تولید یا باستولید می شوند. نمونش، عرضشهای مزکر است. اگر در رفتارهای ما نوعی عرضشهای تک جنسیتی مزکر وجود داشته و نهادینه و باستولید شده، علت آن کدهای ساختاری عمیق پدر سالارانه، و مرد سالارانه است که در فرهنگ و جامعه ریشه دارد در ایمیان یکی از رویکردهای های نظری متمایز سنت نظری چپ و تئوری است که در حوزه آن توسعه پیدا کرده از مارکس تا گرامشی از این منظر فرهنگ روبنای مناسبات تولید است به این ترتیب خلقیات اجتماعی نیز به نوعی از طریق بررسی نظام معاش، قابل توضیح می شود. بعدها در سنت چپ تئوری ها و مفاهیم دیگری نیز توسعه داده شد که یکی از آنها مفهوم هژمونی است فرهنگ ابزار هژمونیک یا توفق جویانه از سوی طبقات مسلط است که از آن طریق هنجار و ارزش های متناسب با یک ساخت طبقاتی باستولید می شود و در ذهن و رفتار مردم شکل می گیرد فرهنگ در این دیدگاه نوعی ابزار نمادین و معنایی با کار کرده است. همانطور که پلیس و زندان دستگاه کنترل هستند، فرهنگ نیز به طرز مرموزی مردم را کنترل می کند. برای مثال، نظام ارباب هنجارهای رفتاری و خلقیات خود را باز تولید می کند و برتری می بخشد و از طریق آن روحیاتی را در رعیت پرورش می دهد. البته به نظر گرامشی گاه در برابر این هژمونی نوعی ضد هژمونی از سوی طبقات تحت سلطه به جریان می که در اینجا نیز خورد فرهنگی به صورت نوعی آگاهی انتقادی و معطوف به تغییر به وجود میآید و روحیات مقتضی خود را رواج می رویکرد دیگر اشاع گرایی است که از سوی کسانی چون ویلهلم اشمیت ارائه شده. بر اساس این رویکرد کرد می توان گفت فرهنگ و از جمله خلقیات و روحیات از طریق انتشار و انتقال از یک جامعه به جامعه دیگر تحول پیدا می کند از این زاویه بخشی از روحیات و خلقیات از طریق روی آوری یک واحد ایلی، قومی، ملی، تمدنی و سایر صبر سیاسی اجتماعی به یک حوزه جغرافیایی شکل گرفته است مانند حمله اسکندر، مغول و عرب به ایران که منشأ آثاری در فرهنگ این سرزمین شد به طوری که میتوان گفت اگر این اتفاقات روی نداده بود مردم ما اکنون رفتارها و روحیات دیگری داشتند همچنین بر اساس نظریه اشائه میتوان تحولات فرهنگی رفتاری و خلق و خوهای نوپدید گروه های اجتماعی را در ایران طی یکی دو سده اخیر توضیح داد که از طریق بازرگانی رفت و آمدها و ارتباطات از قرن نوزدهم آغاز شده و نسل های معاصر معروز آن بود است این روند جدید تحول در طرز تفکر و روحیات ایرانیان در عصر جهانی شدن در ابعاد گسترده تر، و پیچیده تر ادامه دارد نظریه جهانی شدن به یک جهت از این نظریه پایه مشروب می شود فناوری اطلاعات و ارتباطات و محیط چند رسانهی پسانوین در زندگی روزمره و رفتار جمعی مردمان جوامع تأثیر درازدامنی دارد. سرانجام به رویکرد تحولگرایی اشاره کنیم که از سوی مردم مانند گوردون چاید به میان آمده است. وقتی با این روی کرد آغاز می کنیم، توجه ما بیشتر به روند تحولات خلقیات مردم و مراحل مختلف آن معطوف می شود. ملاحظاتی درباره هر یک از این رویکردها وجود داشته است. مثلا اینکه کارکردگرایی نمی‌تواند تعارض‌ها را در رفتار مردم توضیح دهد. در ساختگرایی کنش و عملکرد عاملان انسانی و تأثیر آن در ساختارها در ابهام میماند. در اشایه‌گرایی به عامل خلاقیت و نیز تنوع جوامع کمتر توجه می‌شود. در سنت نظری چپ در وجه خود ارجایی فرهنگ مداقه می شود و فرهنگ از جمله روحیات مردم به روابط تولید تحویل می شود. در حال می توان به صورت تلفیقی از مجموع ظرفیت های هر یک از این رویکرد ها نقطه عظیمتی نظری برای توضیح خلقیات مردم به دست آورد. برای مثال، با توجه به نظریه کارکردگرایی می توان فهمید در شرایط استبداد روحیات تلون و تملق کارکرد دارد و رواج پیدا می کند با توجه به نظریه ساختارگرایی روحیه مصرف زدگی چند دهه اخیر در میان قشر عظیمی از مردم حتی دهک های پایین درآمدی در ساخت اقتصادی تقسیم دولتی پول نفت ریشه دارد نظریه اشایگرائی توضیح می دهد ها و بحرانی شدن اخیر در خلقیات مبتنی بر ارزش پدرسالار چه در سطح زندگی خانوادگی و چه در سطح زندگی سیاسی به ویژه در قیش های متوسط از جهانی شدن مدرنیته غربی متأثر بوده است. و بالاخره با توجه به نظریه تکوّرگرایی، گذار بخشهایی از جامعه ایران از اخلاق اجتماعی ارباب رعیتی به اخلاق شهروندی و یا روندهای نوپدید و روبه رشد زنانه شدن فرهنگ و زندگی در طیفی از های اجتماعی نمونه‌ای از تغییر و تحول فرهنگ عمومی ماست.